الابدال ابدال از اونجا تا اینجا کارما با ابدال بوده یا با اعلال یا با جفت شد ولی اینجا دوتا قاعده سرفی رو توضیح میده که از عنوان درس مشخص هست ابدال هست یعنی حرفی تبدیل به حرفی دیگر می شود و اون حرف اعله هم نیست اگر می بود هم ابدال و هم اعلال میگفت دو گروه از رو آورده چون دو قاعده سرفی مشهور رو توضیح میده امسله اول دعا ذکره زحمه دعا ذکره زحمه فیلی که فاول فیلش فاول یا دال باشد یا ظال یا زای زمانی که به باب افتعال برده شود تا باب افتعال تبدیل به دال می‌گردد. دعاء به باب افتعال ببریم در اسمش شد اد تع دع افتعال اد اد ولی تا تبدیل به دال میشه شد اد یا اد دعی اد ذکره به باب افتعال ببریم شد اذ تکره اف تعله ولی تا در تبدیل به دال میشه میشه از پس ذکره رو که به باب افعال بریم میشه از ذکره زحمه از تحمه زحمه از دحبه شواد از دحبه پس اذا حما به باب افتعال برده شد میشه ازده ذکر از ذکر دعا اد دعو طایرو نمیبینیم چرا چون تا تبدیل به دال شد امثله گروه دوم صاحبه بربه طلع ظلمه چرا, مثالو آورده؟ چرا چون میخواد بگه اگر فاول فعل فیلی صاد بود مثل صحیبه یا باب بود ماننده بارده یا پای دستدار بود طالعه یا ضاب بود وای دستدار ماننده ظلمه هرگاه فاول فعل فیلی یکی از این چار حرف بود میخواستیم به باب افتعالش ببریم اینجا تا تبدیل به پای دستدار می شود صاحبا به باب افتعال ببریم در اصل می شود اسم تحبه ولی می شود اسم تحبه با ربه می ام تربه که می شود ام قربه به باب افتعال می شد اط اط طلعه که می شود اطلعه ظلمه می شوند ایل تلمه که می شوند ایل تلمه باطای دست دار البته توضیح ما تصویری نیست صوتی هست کتاب باید باز باشه برای فهمیدن قواعد بریم قواعد قاعد چارگون کتاب اذا کان اول سلاثی زمانی که اول سلاثی یعنی فاول فیلش باشد دالن دال او ظالن یا ظالت یا ظال باشد اوزا یا زایه باشد و بلی علی افتعال و برده شود بر باب افتعال بنای بر باب افتعال شود تبدل طاء افتعله دال تبدیل میشه تای باب افتعال به دال و مثل ذلك يحصل في وهمين مصدر افتعل و مشتقاته و همین مثالی حاصل میشه هم در مصدر و هم در بقیه مشتقات یعنی مازی، مزاره، مصدر، اسم فائل، اسم مفعول در هر این اجرا میشه. ادعا، دعا رو که باید افتعله مازش میشه ادعا، مزارهش یدعی، اسم فائلش مدعی، مصدرش میشه ادعا. ذکره، ذکر یدکره، مزدکر، اردکاره. قاعده پنجم پازده که در کتب مثل تصریف زنجانی برون قاعده سرفی ذکر می شود کان اول سلافیه قاعده دومی در ابدال رو گوش دهیم که قاعده پازده کتاب هست ایذا کان اول سلافیه زمانی که اول سلاسیه چه باشد؟ سادن او بادن او طاعن او ضاعن. یکی از این چهار حرف صاد یا باد یا طاع یا ضاع زمانی که فاول فعل فعل سلاسی یکی از این چهار حرف بود و بریه علا افتعاله و به افتعال افتعال افتعال باب افتعال برده شد بنای بر افتعاله شد تبدل و طاع و افتعالت طاعن باب افتعال تبدیل به طای دست داره می شود و مثل ذالکه یحسنو في مصدری و مشتقاتی و چیز در مصدر و در بقیه مشتقاتش حاصل بشه. یعنی چونین نیست که فقط در ماضی و مزاره و باشه در همه چیزش صحیبه به باب افتعال مرده بشه در اصل تا استحبه باتای درخته ولی بشهد استحبه مزارهش بشهد یستحبه عمرش بشه استحبه بس میشه استحاب فسیلی تقاعده مهم رو در درس ابدال توضیح داد امیدوارم که فهمیده باشه